در باره امیرالمؤمنین علیه السلام, السلام سخن زیاد گفته شده است. لاکن همه حقیقت هنوز گفته نشده است. آنچه از فضائل امیرالمؤمنین سلام خدا بر او تا کنون در زبان‌ها و قلمها جاری شده است، همه فضائل امیرالمؤمنین نیست. بخشی از آن است. از قول نبی ااکرم نقل شده است که فرمود برادرم علی فضائلی دارد که لا تخصا قابل شمارش نیست یعنی انسان ها قادر نیستند این فضائل را بشورند یعنی فوق. درک و عقل و فهم بشر معمولیست، این امیر المومنی. خب ما احتیاج به الگو داریم، احتیاج به اصلا داریم، با این نظر نگاه کنیم به امیر المومنین علیه السلام. به نظر این حقیر، در چند سرفه باید زندگی امیر المومنین علیه السلام, و السلام رو مورد ملاحظه قرار داد. چه احل قلم و تحقیق و چه ما که میخواییم مطالعه کنیم و فکر کنیم درباره مسائل امیر